بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام سيدنا سیدنا و نبینا محمد و على آله التیبین الطاهرين المعصومین لسيما بقية الله في الأرزين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته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 السلام على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكازم السلام عل علي بن موسى الرزا السلام على محمد ابن علی الجباد السلام على علی بن محمد الحادي السلام على الحسن ابن علی الزکی الاسکری السلام على الحجت بن الحسن القائم السلام عليک يا أبا عبد عبدالله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 که بنده دیشب فقط صبر رو تونستم به اندازه یک جلسه بسیار فشرده توضیح ارص کنم چون اصل بحثم این عبارت قضای رب صبر بر قضا و قضای رب ربی که اله است و این رو میخوام ان بیشتر چون بیان کنم روی صبر دیگه تاکید نمی‌کنم اما کلمه صبرش رو که دیشب اشاره کردم جمبندی شد و سه دقیقه ارز کنم که ورود به بحث بعدی راحت تر بشه ارز کردم انسان چون موجود مختار است و بناس برای رسیدن به هدف و قبل از حرکت برای رسیدن به هدف انتخاب هدف این اختیار خود را به کار بیاندازه موانعی که بر سر راه او قرار میگیره در باید و نبایدها مانع انتخاب هدف درست و مانع تلاش مفید و حرکت سازنده برای رسیدن به هدف می شود استقامت و ایستادگی لازم است تا بتواند بر این موانع چه در جاهایی که باید غلبه کند چه در جاهایی که نباید پیروز شود پس صبر ایستادگی پای فشردن، مقاومت و استقامت در برابر عوامل و ناملایماتی که مانع انتخاب هدف درست و حرکت صحی به سوی آن هدف است و طبیعی است اگر انسان قدرت ایستادگی نداشته باشد و زود از معرکه و میدان بدر رود قطعا به اون نتیجه ای که بناس نائل شود نائل نخواهد شد. بدین جهت بود که در روایت صبر را برای ایمان به منزله رس برای جسد معرفی کردن خب اجازه بدید همون مقداری که دیشب بحث کردیم کافی باشه. اما امام علیه السلام در این دعا به خدا عرض می‌کنند صبرًا علی قزااک صبر بر غذا یعنی چی؟ غذا یکی از اون واژه های اسلامی است با قدر در کنار هم غذا و قدر که معنای غلط آن که متاسفانه خیلی در اکثریت جامعه رواج یافته بسیار مخدر و مخرب و خطرناک و معنی صحیح آن که بسیار عمیق و ظریف و سازنده است، کمتر بهش توجه شده اکثریت مردم با کمال تعصف حالا به چه جهاتی کاری ندارم از غذا و قدر برداشتی دارن یعنی یک چیزی را که خداوند در این عالم معین کرده هیچ چاری نیست عوض شدنی هم نیست مام در مقابل او کاری نمیتونیم انجام بدیم دیگه خدا اینجوری خواسته مثلا خب جزء قضا و قدر بوده که عمر سعد امام حسین را بکشد پس خب دیگه عمر سعدم هم طبق و قدر الهی عمل کرده قضا و قدر الهی اینگونه بوده که من اینگونه باشم شما اینگونه باشید. خب این که جبر میشه اگر به این معنی باشد قضا و قدر یعنی مقدرات الهی در عالم به شکلی که من انسان که موجود مختارم و مسئولم به سبب اختیارم اونجا نقشی نداشته باشم و مجبور باشم در مقابل قضا و قدر الهی فقط تسلیم باشم اگه به این معنی بگیریم خب این که مخدره این که عامل تقدیر حرکت جامعه میشه این که انسان رو از تلاش در مسیر تکامل باز میداره این که ظالمین عالم رو تبرعه میکنه این نمیتونه بحث دینی درست باشه برای اینکه این که ای مطلب روشن بشه غذا و قدر رو اول معنی کنیم شواهدش رو از آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام خدمتتون عرض میکنم اگر وقت امشب اجازه داد امشب نداد انشاء الله با انایت الهی فردا شب بعد از روشن شدن معنای غذا و قدر صبر بر غذا و قدر یعنی چی که امام حسین علیه السلام خواستن فقط این تذکر اول عرض بکنم دعاهایی که امام حسین علیه السلام صبح آشورا تا عصر آشورا دارن که عرض کردم فرمایشات حضرت سه بخش میشه یه بخشی با خدا در قالب دعا و مناجات یه بخشی با خانواده و اطرافیان و اصحاب یه بخشی هم با مخالفین در این دعاها من گشتم و دقتم کردم شما هم مطالعه کردید میدونید حالا دقت بکنید هیچی ها نداره خدایا منو از دستشم رو یزید و عمر صد نجات بده خدایا کمک کن من کشته نشم خدایا کمک کن اصلا بحثی نیست بلکه این صبرن علا غذا یک اونو بیان میکنی که حالا عرض خواهم کرد چیه لذا نحوه دعای بحث خیلی مهمتر و حساستریه حالا با توجه به این نکته غذا و قدر یعنی چی؟ در لغت غذا یعنی گذشت، سپری شد، تمام گشت، حکم روند، قطعی کرد، برید تمام کرد. همه اینا معلی میده به فارسی. شما میفرمایید نماز من غذا شد. خدا اینا کرده. اگر صبح خوابتون برد، نمازتون غذا شد، غذای نماز دیگه اون نمازی نیست که شما به صورت ادا می کنید اون گذشت حالا دارید غذا می کنید به جاش این دورکت رو غذا می کنید یعنی تمام شد وقتش تپری شد غازی رو چرا غازی می اگر دو نفر با هم دعوا داشته باشن اختلاف داشته باشن تا زمانی که غازی حکم نکرده پرونده بازه شاکی مدارک ارائه میده، متشاکی مدارک ارائه میده. حرفای طرفین با یکدیگه میزنن تا زمانی که قاضی حکم داد قضاوت کرد غذا تمام شد یعنی دیگه مسئله بریده شد و گذشت پس غذا بریده شدن قطعی شدن سپری شدن گذشتن و تمام گشتن قدر یعنی اندازه مقدار اندازه ای که گذشته است سپری شده است و دیگه برگشتنی هم نیست یعنی چی؟ این بیان دیگرش در زبان دین سنت هم بهش گفته شده سنت الله ولن تجدل سنت الله تبدیلا سنت الله ولن تجدل سنت الله تحویلا هر دو در قرآن کریم اومده سنت الهی که تغییر پیدا نمی کند تبدیل نمی شود عوض نمی گردد یعنی یک قانون یک نظام یک قاعده با یک اندازه معین و حساب شده ای را خداوند عالم بر این جهان هستی حکفرما کرده که اون قانون اون نظام اون قاعده به هیچ نحوی عوض شدنی نیست تمام شده قطعی شده این قانون قطعیه مرهوم استاد متحرید در یکی از آثارشون کتاب معروف فلسفه و قیام امام مهدی علیه السلام در فلسفه تاریخ صفحه دوازده این بیانی که الان بنده با این توضیح مختصر گفتم در دو سه خط اینجوری بیان می دقیق فرمودن قرآن کریم این گمان را که اراده گزافکار و مشیتی بی قاعده و بی حساب سرنوشتهای تاریخی را دگرگون می سازد به شدت نفی می کند و تصریح می نماید که قاعدهی ثابت و تغییر بر سرنوشتهای اقوام حاکم است قرآن کریم به شدت نفی می کند که نظام عالم قاعده نداشته باشه بی حساب و کتاب باشه غذا قورتکی باشه نه یک قانون یک قاعده و یک نظام بر این عالم حاکمه این چون اندازه و مقدار دقیقی دارد بهش میگن قدر چون گذشته سپری شده دیگه برگشتنی نیست دیگه تغییر نمی یابد بهش میگن قضا غذا و قدر اندازه حساب شده ای در نظام هستی از طرف خالق عالم که این تغییر یافتنی نیست و لذا سنت رو هم به همین معنی می که لا تبدیل و لا تحویل. حالا این هم در تکوین عالم مطرحه هم در تشریع عالم در تکوین عالم میشه شه غذای یا سنت تکوینی الان مثال می زنم در تشریع عالم میشه غذای تشریعی یا سنت تشریعی حالا غذای تکبینی، غذا و قدر تکبینی تکبین یعنی خلقت، کون هستی، کائنات هستی ها تکبین عالم خلقت و هستی در عالم خلقت خدا ای حاکم کرده نظامی رو گذاشته، ثابت لایت غیر و این گذشته سپری شده که چی؟ آقا اگر من شمای انسان قرار شد از نظر حیات ظاهری جسمانی زنده بمانیم بی آب نمی شود این داد؟ این دیگه این جزء غذا و قدر الهیه مقدر کرده خدا یعنی این اندازه را حاکم کرده غذا هم شده یعنی گذشته دیگه نمی تونه برگرده تغییر پیدا کنه که من و شما انسان بی آب نمیتونیم زنده باشیم حال یا مدت محدودی میمیریم خدا مقدر کرده در این عالم بی هوا ما نمیتونیم زندگی کنیم بی غذا نمیتونیم زندگی کنیم حالا هوا زمانش کوتاهتر، آب یه مقداری زمانش بیشتر غذا یه مقدار زمانش بیشتر این نظام عالمه. خدا یه قاعده بر این عالم حاکم کرده که اگر من از یک ارتفاع بلندی بیفتم پایین دست و پا ممکنه بشکنه یا ممکنه بمیرم. وقت معجزه که با میشه یک حالت خاصی پیش بیاد بهش میگن خارق العاده، به همین جهت خارق العاده است که بنا به جهتی اون قاعده در یه جاهایی بر مبنای مشیت الهی تغییر پیدا میکنه. مثلا در غذا و قدر الهی آتش باید بسوزونه اما بنابراین اینکه خدا میخواد قدرتشو نشون بده حقانیت یک پیغمبر رو نشون بده آتش ابراهیم رو نسوزونه اما در نظام کلی عالم قضاب و قدر چیه؟ آتش میسوزونه آیا اینو ما میتونیم در تکوین عالم از به ببریم و تغییرش بدیم؟ نه ما تغییر قضاب و قدر الهی را در عالم تکوین نمی توانیم داشته باشیم لذا تخالف و تقایور قضا و قدر تکوینی مساویس با نابودی ما مخالفت با قضا و قدر تکوینی یعنی قرار آب به ما برسه تا زنده باشیم ما میگیم میخوام بی آب زنده باشم مخالفت میکنم خب میمیره من با قانون خدا که نمیتونم مخالفت کنم در عالم تکوین آقا در غذا و قدر تکوینی قرار هوا به من برسه تا من زنده باشم من میرم زیر آب میگم هوا نباشه خب میمیرم لذا تخالف و تغایر ممکن نیست تطابق وظیفه است دقت کنید تطابق وظیفه است در غذا و قدر تکوینی تتابق با قانون و نظام حاکم بر عالم خلقت باعث بهرهمندی در نظام خلقته. بشر در مرحله قضا و قدر تکبینی به دو دلیل بیشتر از قضا و قدر تشریعی تتابق را رعایت میکنه حالا قضا و قدر تشریعی را مرز میکنم ولی اینجا دقت بفرمایید بشر در تتابق با قضا و قدر تکوینی به دو دلیل البته دلال دیگم نمیگم نداره این دوتا باره زرز میکنم به دو دلیل بیشتر از تطابق با قضا و قدر تشریعی رعایت میکنه تخالف نمیکنه تغایر نمیکنه یک چون محسوسه اثر سوش اثر سوش محسوسه یعنی هر انسانی میفهمه اگه بخواد بری زیر آب هوا به اون نرسه. خب میمیره این داره حس میکنه هر انسانی میبینه اگه با غذا خوردن خودشو و وفنده راحت میمیره پس این میشه مخالفت با غذا و قدر الهی در عالم تکوین مساویس با ضرر خودم دوم هرچه علم در این عالم پیشرفت میکند تجربه آدم بیشتر میشود فهم نسبت به این که باید غذا و قدر الهی در عالم تکوین را بیشتر بفهمیم و بهتر با او هماهنگ بشیم به نفع ماست به کمک علم متوجه میشه لذا بر این مبنا شما خیلی در عالم مخالفت با غذا و قدر تکوینی ندارید بشر خودشو داره وفق میده اما مهم در اینجا بحث قضا و قدر تشریعی است قضا و قدر تشریعی یعنی چی یعنی خداوند همونگونه که در عالم تکبین نظام حاکم کرده و ما قرار با اون نظام یا اون سنت یا اون قضا و قدر هماهنگ بشیم تا نتیجه بگیریم برای رشد ما تعالی اختیاری ما قوانین تشریعی وضع کرده اون قوانین تشریعی الهی هم جز قضا و قدر تشریعی است قابل تغییر نیست بنا نیست تغییرش بدیم من دو نمونه رو اجازه بدید از قرآن کریم ارز کنم از روایت هم یه نمونه اشاره فقط میکنم. در سوره مبارکه اعراف آیه 96 ولو ان اهل القرى آمنو و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض این قانونه خدا میگه ولو ان اهل القرى اگر مردم غریه ها اگر انسان های این عالم آمنو و تقوا اهل ایمان و تقوامی شدن گونه که خدا ایمان رو به ما معرفی کرده قد افلح المؤمنون بشیم اهل می شدن انگونه که خدا در قرآن تقوا و عامل سعادت ما معین کرده بال آقبت للمتقین اگر ولو ان اهل القرآن آمنو و تقو لفتحنا علیهم برکات من از سماه بالعرض ما از آسمان زمین براش اون نازل کردیم این قانونه خب حالا مردم با این قانون هماهنگ نشن ایمان نیاران تقوا نداشته باشن برکت به معنی حالا ممکنه برکت اینجا فقط ثروت دنیاوی و مادی و اینا نگیرید یه وقت انسان ثروت داره عمر طولانی داره هیچ آثار خیر نداره ثروت زیاد داره هیچ آثار خیر نداره و قدرت و پست داره هیچ برکت و آثاری از او به دیگران نرسیده برکت که معنای خاص خودشو. پس این یه قاعده است یا در سوره رعد آیه یازده خداوند یه قاعده رو در عالم تشری داره بیان میکنه چه میفرماید ان الله لا یغیر ما به حتی یغی ما یه قاعده است خداوند هیچ مردمی را که خودشون نخوان خودشون رو عوض کنن عوض نمیکنه قاعده کلی الهی سنته یعنی این قدریست که غذا شده یه سنتیه میگه شما نخوای عوض بشی پای منبر پیغمبرم باشی اوظ نمیشی شما نخوای تغییر بیابی خطبه امام حسینم که روز آشورا براتون بخونه کدوم خان از امام حسین بالاتر کدوم شرائط خر... خطبه برای تکون دادن دل از روز آشورا بالاتر ولی جواب خطبه امام حسینو سنگ میزنه به پیشانی حضرت و توهین میکنه و اون مطالب رو پیش میاره ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به این نظام تشریعی الهی در این عالم که این انسان ها اگر قرار در عالم خلقت با اختیار و اراده خودشون حرکت تکاملی بکنن باید و نبایدی را که خدا بهشون شما معرفی میکنه میشه قوانین الهی اینم میشه قضا و قدر تشریعی الهی حالا روایتی که این رو برای من برای ما بیشتر توضیح میده اجازه بدید یه نمونهشو از امیر المؤمنین علیه السلام توحید صدوق صفحه 384 روایت خیلی روشن کننده و توضیح دهنده قشنگی است در این رابطه اما یه سلوات نیاز داره على امره بطاعه عن المعصيه امر الهی بر اموری که قرار ما تاعت کنیم مثلا اقامه الصلاه امر الهیه كتب علیكم الصیام امر الهیه ولله على الناس حج لبيت من استطاع الیه سبیلا امر الهیه نهی عن المأسیه. این کارو نکنید این کارو نکنید و کذا و فرق وعد و وعید میدونی چیه وعد وعده خدایی نسبت به پاداش اعمال خوب ما در قیامت وعید وعده خدا نسبت به جزای اعمال زشت ما در قیامت اینه میگن وعد اونه میگن وعید خداوند امرو نهی داره یا نداره تو قرآن و بیان پیغمبر از طرف خدا خداوند وعد وعید داره یا نه؟ تو قرآن آیات بسیاری این کار کردی نتیجه اینه، این کار کردی نتیجهش اینه و ترقیب و ترهیب باهی دوچشم ترقیب، ایجاد میل و رقبت کردن در شما برای یه سری کارا مثلا خدا میگه اگه این کارو رو خوب کردی، این پاداش داری، این میشه ترقیب و ترهیب، ترسندن خدا میگه این کار کردی این کار کردی این آثار سوء داره پس به ترس این کارو نکن کل ذالک همه اینا امر خدا نحی خدا وعده خدا وعید خدا ترغیب خدا ترهیب خدا کل ذالک غذا الله فی افعالنا و قدره هو لاعمالنا از این رو معنی غذا و قدر کل و زاله که الله اینا غذای است راجب کارای من و شما و قدر حول اعمالنا قدر الهیست در رابطه با افعال اعمال ما یه نکته اینجا عرض کنم بعد بهتر این روایت رو بپرمیم بعضی وقتا ما برای جوونا وقتی میخوایم جبر و اختیار رو معنا بکنیم همین بحث های غذا و قدر رو بیاریم میگن که آقا کجا من خلقتم به اختیار و خودم بود من که بگیم کی گفته خلقت اختیاریه؟ اصلا دایره اختیار فقط و فقط در اعمال من شما لا غیر خلقت به اختیار من شما نیست من نه خود آمده ام تا که ز خود باز ربم هر که آورده مرا باز برد در وطنم نه اومدن ما به اختیار ماست نه رفتن ما به اختیار ما اینا همه انایت است بر مبنای فیض و رحمت و لطف و مشیت رح، رحمانیه و رحیمیه الهی که بحث دیگری داره اما در این بین، بین آمدنی که به اختیار من نیست، رفتنی که به اختیار من نیست، نهوه عمل کردنی این بین به اختیار منه و اون چه که بعد از رفتنم در عالم واقعیات آخرت قرار جایگاه برای من معین شود به اقتضای این نحوه عمل کرد منه پس اینکه که حضرت فرمودن فی افعالنا لاعمالنا اون نظامی که خدا معین میکند میگه این کار را از نظر من و خدا بکن این کار رو از نظر من خدا نکن. اگه من خدا رو قبول کردی میخوای با اونچه که من برای تو میخوام بهش برسی این قدر اندازگیری شده است برای سعادت سعادتمندی شما تغییر پذیرم نیست. هیچ راه دیگری وجود نداره. شما یه وقت به یه پزشکی مراجعه میکنید پزشک حاذق تشخیص دادید، صاحب نظر میدونید، میگید آقا دلدرد دارم، شب تا صبح نمیتونم بخوابم. پزشک تون میکنه میگه داروی شما فقط اینه. حالا با این تفاوت که انسان ها ممکن اشتباه کنن، ممکنه تشخیص دقیق نداشته باشن، من در اون فرضی که اشتباه نمی کنه دارم میگم این فرض مثال منو در نظر بگیرید. پزشک میگه عزیز من اگه منو به تشخیص دادید این دارو تمامم شد دیگه هم آقا حالا شبیهش چی نخه شبیه هم نداره فقط همین لاغیر و از نظر پرهیز قضا هم فلان قضا و فلان قضا مطلقا نباید بخوری شما در مقابل پزشک میگی که آن نمیشه حالا تغییر بدید این مثلیه که به خدا بگیم خدایا حالا نمیشه نماز صبح بکنی 4 رکعت رو بکنی دو رکعت خدایا نمیشه حالا ماه رمضان اگه تابستونه بجاش ما زمستان روزه بگیریم خداییو نمیشه حالا به جای حج برم تو ماسه های صحرای عرفات و مشعر برم توی مناطق خوش آب و هوای اروپا ولی اونجا هر چیم دارد خواست عبادت بکنم میگه این قضا و قدر است یعنی یه اندازگیری شده به وسیله خدا همون گونه که خالق شما میگه عزیز من بی آب نمیتونی زندگی کنی تو تکبین بی هوا نمیتونی حیات تو در این عالم تکفین حفظ کنی اگه در عالم تکوین میخوای یه باغچه تو حیات منزل شما شاداب بمونه بی آب و خاک نمیشه در نظام تشریع منعای اون قوانین معین شده الهی تو نمیتونی به اونجا که قراره برسی برسی اما در تکفین شما چون تجربه میکنید و محسوس براتون بیشتر رعایت میکنید در تشری اینکه نماز نخونم چگونه حیات معنوی من از دنیا میرود روزه نگیرم چگونه حیات معنوی من از دنیا میرود دروغ بگم چگونه واقعیت انسانی من از من گرفته میشود تکبر ببرزم چگونه واقعیت شخصیت انسانی من از زایع شده و از میان مره چون محسوس نیست و این در بلبسر معروفی که ما فارسی زبانها داریم عقل بسیاری از انسان ها تو چشمشونه یعنی مسائل چشم پرکن براشون مهمه عقل پرکنی رو کمتر میبیند لذا اونی که این واقعیت رو میفهمه اگر یه دروغ بگه ده روز گریه میکنه چون میفهمه چی کار کرده با خودش بیمه یه مثال بزنم بعد روایت براتون بخونم آقا این لیوان آب اینجاست بنده در حالت عادی آب سالم و گوارای تشنم میشه می مینوشم نیازم دارم برا من مفیده بهره میبرم حالا اگر شما بدانید در این آب سیانور ریخته در این آب یه مایه کشنده و مسموم کننده ریخته من نمیدونم من از نوشیدن این آب وحشت دارم چون نمیدونم نمیفهمم ولی شما که به خصوص اگر متخصص این مسائل باشید وقتی این لیوان من بلند کردم بیارم تم دهانم شما وحشت میکنیم میگید وای با چه جرعتی داری این آبو مینوشی این در قاعده قضا و قدر تکوین هست یا نیست خب در غذا و قدر تکوین آقا سیانور وارد بدن من بره بیچاره میشم منم نباید غذا و قدر قاعده تکوینی رو به هم بریزم چون بلد نیستم دارم به هم میریزم شما چون بلدید نگرانید حالا اونایی که غذا و قدر تشریعی رو بلد میشن از یه دروغ ناله میزنه از یه روز صبح نماز صبحش غذا بشه کلی گریه میکنه نه واجب که هیچی یه شب توفیق نماز شب از او سلب بشه روز میگه خدایا چی شد چی بوده حالا اجازه بدید من روایاتی که در این زمینه اینو برای ما یه مقداری روشنتر میکنه خب بس غذاب و قدر در عالم تشریح چی شد الامر به تاعت و نهی عن المعصیت و الوعد و و ترقیب و ترهیب کل و ظالک الله فی افعالنا وقدره ولع اعمالنا اینا قضا و قدر الهی در افعال و اعمال ماست پس میشه تشریعی حالا امام صادق علیه السلام اصول کافی جلد سه صفحه 99 اینو تقاضا میکنم خوب دقت کنید ان اعلم الناس بالله عالم ترین انسان ها به خدا خب علم ما به خدا به تعبیر درست یعنی روشن بگم معرفت الله امیر تو خطبه اول نحج الولاغه فر بودن اول معرفت الله نخستین قدم دینداری خداشناسیه مثل رابطه ما با خدا از اینجا همه حرف مطرح میشه حالا یه وقت انسان خدا رو در یه حد اجمالی سطحی خدایی هست دیگه حالا امام صادق میفرماید این اعلم ناسب الله اونیک که از همه انسان ها خدا رو بهتر شناخته ارزا به غذا الله چقدر زیباست بباید؟ ارزا هم به غذا الله راضی تر است به غذای الهی خواه غذای الهی یعنی چی؟ یعنی قوانینی را که خدا بر آلم حاکم کرده هیچ کسا دیگه نمیتونه عوض کنه خاک بر فرق من و تمثیل من مجبورم این مثاله بزنم ولی اصلا قابل مقایسه نیست شما اگه یه مهندس ساختمون آوردید می‌خواد یه همچو حسینیه‌ای بسازید بیاد بگه آقا ستونا باید اینجوری باشه ده تا مهندس دیگه بیان بگن نه خیر آقا ستوناش اینجوری بکنید شما میدونید با این فرضی که میدونید که این مهندس اولیه که اومده به شما گفته ستونا اینجوری باشه او در علم مهندسی از همه واردتره شما دانایی به این مسئله هستید حرف بقیه رو میگیرید یا حرف رو میگیرید حرف اولی رو میگیری حالا یه انسانی که به فرموده امام صادق ان اعلم الناس خدا رو از همه بهتر میشناسه حالا خدا رو از همه بهتر بشناسه راضی ترین به قضای خدا میشه یا نمیشه پس چه کسی راضی به قضای خدا نیست خدا رو نشناخته چون قضا یعنی نظام الهی یعنی قانون الهی حالا عرض می‌کنم غذای الهی در رابطه با آشورا چی بود که امام حسین کلمه صبر رو به کار برد در این دعای صبح آشورا تو زهر آش، اسر آشورا تو گودال یه چیزی دیگه بهش اضافه کرد که این هر دوتا رو ما کار داریم اونجا چی اضافه کرد؟ کلمه رضا را رزن به غذایک از کلمه صبر به کلمه رضا. چون کلمه صبر استقامت و ایستادگیه خدایا در این قضای که تو مقدر کردی این مقدر اینه که ان الله شوان یراکه قتیلا که باید توضیح بدم بعد یعنی چی اگر قضای تو در این ظرف زمان و مکان مثل آشورا این است که شوان یراک قتیلا که قرار حسین شهید بشه و قرار زن و بچه‌ی من اسیر بشن و به این صورت در بیابانهای کوفه و شام به حرکت در بیان صبرًا علی قضاءک یا رب حالا کلمه ربم چرا به کار برده باید در ادامه بحث کنیم همه اینا حساب داره من صبر استقامت می کنم اما بالاتر از استقامت رزن به رضائک تسلیمن لغزائک رزن به غزائک اینا هم داره رضایت بعد از صبر چیه؟ یعنی نه استقامت و صبر را با اکراه استقامت را بر مبنای رضایت تمام وجود برخی لغتدانان فرق بین صبر و رضا رو با این مثال خوب بیان کردن میگن شما یه معامله ای رو میخواید انجام بدید مجبوری، الان پول داشت، خدایی نکرده، خدایی نکرده یه بیماری حادی پیش اومده، مجبور شدی خونتو بفروشی، بیماریتو مداوا کنی الان که اصلا دارید نمیخواست خونتو بفروشی، ولی چاره ای نداری، ازتراره حالا که دارید خونه رو معامله میکنید، خریدار میگه راضی هستید، میگه راضی بی معامله. این رضایت، رضایت از روی چیه؟ اکراهه این واقعا رضایت نیست اما یه وقت شما واقعا علاقه من دید این خونه رو ساختید بفروشید با پولش برید یه کار دیگه انجام بدید مدتی هم مشتری گیر نمی اومده حالا یه مشتری خیلی خوب منصف با پول حلال خیلی جالبی اومده میگه, میگه آقا بله با کمال میل میخوام این معامله سر بگیره تسلیمن لغزائک سبرن لغزائک با رزن لغذا رو اینگونه نگاه کنید نه تنها نسبت به غذای تو یا الله من صبر میکنم من با تمام وجود رضایت میدم که در ادامه میگم مقام کسانی که نسبت به غذای خدا رازیان رزوان است و رزوانون من الله اکبر زالکه هو الفوز العظیم که حالا در ادامه بس انشالله عرض خواهم کرد و لذا این روایت امام صادق علیه السلام ان اعلم الناس بالله به بقضاء الله وجل یادتون بمونه هرچه داناتر باشن نسبت به عظمت و ارزش و عنایت و لطف و رحمت پروردگار بیشتر راضی به قضای الله میشن چرا چون کی برای من نظام و قانون و قاعده در نظام هستی معین کنه از او داناتر، از او مهربانتر، از او چه لغتی پیدا کنم بگم؟ یه روایت دیگه هم اجازه بدید، اینجا خدمتتون ارز این اینم روایت بسیار قشنگی در همین رابطه است از امام علیه السلام فرمودن که از امیر المؤمنین قرار الحکم من حسن بل بالغذا کسی که رضایت او به غذای الهی نیکوست حسنه انایت کنید آقا به خدا قسم والله که سیغه قسمه دارم ارز میکنم بنده به اندازه خودم در این عمرم که بالاخره توی حرفاق قوته خوردم هیچ دلیلی بر حقانیت اهل بیت پیغمبر اگه نداشتم روایاتشون برای من کافی بود ببینید چه دقت عایی چه ریزکاریایی رو که بعد از 1400 سال انقدر باید بررسی کنیم مطالعه کنیم اینور بزنیم اونور بزنیم او کجا رو دارن میگن چه نکته‌ای رو انگوش گذاشتن چجوری دارن به ما تعلیم میدن حالا شما ببینید من حس و رضا و غذا با بیانی که راجع به کردم کسی که رضایت او به قضای الهی نیکوس با توضیحاتی که کردم یعنی چی؟ یعنی معرفت الله پیدا کرده معرفت الله پیدا کرده نسبت به اینکه خدا در عالم تکوین قضا و قدر تکبینی داره میشه سنت تکبینی در عالم تشریع قضا و قدر تشریعی داره میشه سنت تشریعی من نسبت به قضای الهی اختیار دارم همین جوری که خدا معین کرده آقا جون اگه قضا نخوری میمیری ولی من اختیار دارم که قضا نخورم خودکشی کنم اما به من گفته این مخالفت تو با نظام الهی کردی زایع میشی به من میگه اگه قرار تعالی پیدا کنی به مقام قرب الهی برسی باید نماز بکنی باید روزه بگیری باید حجاب داشته باشی باید دروغ نگی باید سالم باشی باید چنین و چنان باشی من اختیار دارم این گونه نباشم ولی اگر اختیارم و در تخلف با غذا و قدر الهی به کار بردم راضی به غذای الهی نشدم ضایع میشم به اون تعالی که باید برسم نمیرسم حالا من حس و نه رزا حو بالغذا حس و نه صبر و استقامتش در مقابل مشکلات و ابتلاعات نیکو میشه لذا برای امام حسین صبر کردن خیلی راحته تو گویدال قتلگام فضه کل حسین میخنده اصحاب ابی عبدالله میگن شب آشورا الا اصحاب خود ابی عبدالله که شانش اجل من شو بگم راجبه امام حسین که کائنات متحیره جناب حبیب ابن مظاهر پیرمردی است خیلی اهل شوخی و مزاح نبوده میگن شب و آشورا دیدیم خیلی مزاح میکنه بهش گفتیم حبیب تو گفت آخه چجوری شوخی و مزاح نکنم از ذوق فردا از امام باغر علیه السلام این سؤال کردن این تو کافیه آقا این همه مصائبی که برای اهل بیت در روز آشورا نقل شده شمشیر و شمشیر نیزه جای نیزه خنجر جای نیزه سنگ زدن ازیت کردن اینا چقدر رنج بردن امام باغیره امام معصوم دو تا آوردند آوردن بالا زدن رو دستشون فرمودن این مقدارم نشد چرا چرا حسون از سبروهو للبلا وقتی که زنای مصر نارنج به دستشون دادن قرآن بیان میکنه یوسف دیدن مات و مبهوت زیبایی یوسف شدن به جای نارنج کف دستشون رو بریدن متوجه شدن درده حس کردن اینا چنان مات مبهوت الهی و امامشون بودن و چنان راضی به غذای الهی بودن کسی اینا رو متوجه نمی شدن لذا در مقام حرکت بسوی الله معرفت الله برای فهم غذا الله و صبر در غذای الهی و راضی شدن به غذای الهی لازمه خب یه آیه رو اجازه بدید به اندازهی که وقت امشب اجازه میده برای تکمیل بحثم به کار ببرم که این آیه رو ممکنه کسی بر علیه بحث من ابتدا از او برداشت کنه الان میخونم اون برداشت غلط اول میگم اما برداشت درستی که میشه در تعیید ارائز بنده ببینید این آیه چه درسی میآموزه، سوره مبارکه احزاب آیه سی و شش. و ما کانه لی ولا مؤمنه ازا غزالله و رسوله امرن ما کانه مؤمنن ولا مؤمنه حالا چه مرد مؤمن باشید؟ چه زن مؤمن؟ اگه مؤمنید یه وقت یه انسانی اصلا مسلمون هم نیست تا چه برسه مؤمن؟ یه وقت انسانی مسلمان شده ولی به حد ایمان نرسیده میگه اگه قرار مؤمن باشید که قد افلحل مؤمنون اون رستگاری که خدا برای ایمان و مؤمنین معین کرده بش نائل بشید و ما کانل مؤمنن ولا مؤمنه نرسیده سزاوار نیست نمیتونه یه مؤمن و یک مؤمنه ازا غذا الله و رسوله وقتی خدا غذایی رو انجام داد با این بیانی کردم یعنی حکمی صادر کرد غذای الهی این غذا غذای تشریعی دیگه و رسوله چرا رسوله رو اضافه کرد؟ چون غذا و قدر تشریعی اله از طرف کی به ما میرسه؟ از طرف رسول دیگه لذا و من یوته الرسول فقط اتا الله انما وليكم الله ورسوله وآل الامر که اعیمه اطهار علیهم السلام باشد لذا و ما كان للمؤمن ولا مؤمنه ازا غزا الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره که در مقابل غذای الهی برای آنها اختیاری خیره اختیاری نیست که در مقابل این امر خدا، این نحی خدا با این توضیحاتی که کردم برداشته غلط چیه؟ پس غذای الهی شد ما دیگه اختیار نداریم منظور آیه اینه؟ نه آیه میخواد چی بگه؟ اجازه بدید با مثالی که رو پزشک ددم بگم بنده الان میرم سراغ پزشک همون مثالی که ضمن بحثم ارز کردم پزشک به من میگه آقا جون غذای من برای شما یعنی حکم من یعنی اونی که من برای شما قطعی کردم دیگه تغییر نمیکنه. این داروست و این غذا به من میگه حق نداری تخلف کنی حق نداری یعنی مجبوری یا اینکه اگه منو قبول داری قرار من برای سلامتیتو نسخه تجویز کنم دیگه اعمال سلیقه نکن دیگه از خودت نظر نده ما کانال مهمن و اذا غذا الله و رسول و لهم لحول حالا شاهد ادامش هم میارم یعنی وقتی خدا برای شما یک غذا یک قواعدی در جهت تعالیتون چه در تکمین چه در تشری معین کرد دیگه شما چهکارید که بخواد به تغییر و تخالف با او بپردازید لذا در ادامه چه میگه و من الله و او فقط زل زلالا مبین. پس میشه اصیان کرد یعنی اختیار رو به کار برد زیر بار و حکم قضای الهی نرفت یعنی اختیارت رو اینجا به دو ما... دو معنی داره یه تففیز معنی غلط یه تففیز معنی درست معنی غلط تفیز چیه لا جبرا ولا و الامرون بین الامرین که امام صادق فرمودند لا جبره جبر نیست تفیزم هم نیست یعنی چی یعنی خدا بعد از خلقت شما دیگه دستش بسته شد هیچ کاری نمیتونه بکنه میگه ای داد بیداد این انسان ها از دست من در رفتن حالا ببین چی شیطنتی میکنن دیگه هیچ کاری هم نمیتونم بکنم یارو چه خدا هر آن بخواد پدرم رو در بیا رو میتونه اگر نازی کند از هم فرو ها ای یک لحظه نظر عنایتشو بر داره از نظر مباحث دقیق نیاز ممکن به واجب به تعبیر قرآن کریم یا ایوهن ناس انتم الفقراء او الالله والله و الغني یا الحمید بلا تشبیه بلا تشبیه مثل نیاز این لامپا برای روشنایی به کارخونه برقه یک آن کارخونه برق از دادن نور به این لامپ اجتناب کنه خاموش محضه اگر نازی کند از هم فروری ریزند قالبها پس تفیز به این معنی که معنا نداره اما تفیزی که خورف حکما علما گفتن به این معنی اول الدین معرفت الجبار و آخره تفیز الامر علی تفیز الامر اله. آخر کار اینه که بگی خدایا همه چیز به تو برگزار میکنم چی میخوای بخوام که چیزی نخوام اونچه او میخواد بخوام الله اکبر از این مقام این میشه رضا به قضای الهی چی میخوای بخوام که چیزی نخوام اون چه بخوام که او میخواهد یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا؟ جانان پسندد چی میخواید؟ گفت آوردن خدمت یکی از عرفا یک خادمی رو بهش خدمت کنه گفت نامت چیست؟ گفت آن چه تو خانی حالا به من بگن عبدالله تو به من بگی؟ مثلا عبد شیطان پس اونی که تو میدونی من اونم اگه تو منو عبدالله ندونی عبدالشیطان بدونی که اسم من عبدالله باشه که مهم نیست نامت چیست؟ اون چه تو خانی خوراکت چیست؟ هر چه تو خورانی پوشاکت چیست؟ هر چه تو پوشانی خاسته چیست؟ هر چه تو فرمانی را با خواسته چه کار؟ میگن قش کرد اون آره وقتی به هوش آمد گفت خب همه عمر خدا رو یه روز اینجوری عبادت نکردم که این داره با من میکنه. نامت چیست اون چه تو خانی. خوراکت چیست اون چه تو خورانی. پوشاکت چیست اون چه تو پوشانی. خواستت چیست هر چه تو فرمانی. بنده را با خواسته چه کار. و وقت وقتی جانم به فدایت یا ابا عبدالله. صبح آشرا میگی علی علا غذا رب خدایا در مقابل قضای تو صبورم چون تو ربی، حالا ربشو بد ارز میکنم، و تو گودال قسلگا میگه رزن به رضائک، این صبرم بر مبنای رضایت تمام است طبق این روایتی که امیر به من شما یاد دادن، من حسن الرضا وبالقضاء حسن صبره على البلا، چون فهم نسبت به مقام الهی پیدا بشه تسلیم در مقابل الهی برای او معنا پیدا میکنه لذا در اینجا میفرماید و ما کان لی مؤمنن ولا مؤمنه اذا غزا الله و ورسوله او ان يكون لعمل خيره من امرهم حالا اگر اختیارش رو به کار برد تقیان کرد به جای تطابق با غذای الهی تخالف با غذای الهی رو در پیش گرفت به فکر تغییر برآمد و من یعص الا الله و رسوله اونی که معصیت میکند معصیت یعنی تقیان سرباز زدن اطاعت نکردن خدا و رسولش را فقط ذل زل ذلال مبین زلالت یعنی گمراهی راه رو گم کرد آقا جون قرار بود از این راه بری چرا اون راه رو رفتی راه رو گم کرد و لذا جالبی که این مثال طبیب و اطاعت در مقابل طبیب رو که عرض کردم اینن در روایات معصومین ما علیه السلام از خود پیغمبر هم این روایت به ما رسیده که فکر می‌کنم امشب وقت میگیره این اجازه بدید اگه امری باشه فردا شب براتون توضیح بدم جنببندی کنم بحث امشب رو ادامه بحث برای امام حسین علیه السلام در روز آشورا ضمنی که با خانواده و اصحابشون مطالبی داشتن که همه اونها شنیدنی است ضمنی که مطالبی با دشمنا داشتن چه درسای آموزندهای برای تکون دادن و منقلب کردن انسان‌ها صحبت‌هایی هم با خدای خودشون داشتن در غالب دعا و مناجات من جمله از های امام حسین در غالب دعا و مناجات با خدا در صبح آشورا این عبارت معروفی است که در این دعا امام سجاد علیه السلام برای من شما نقل کرده صبرًا علی قضاءک یا رب دو تاشو توضیح دادم صبر و غذا رو اما انشاءالله حالا در ادامه باید این بحث و مطرح کنیم که غذای رب در رابطه با آشورا برای امام حسین چی بود که امام حسین به خدا ارز میکنه صبر میکنم ما یک غذا و قدر عمومی همگانی برای همه داریم یک غذا و قدر برای شرایط خاص داریم شرایط خواست امام حسین و آشورا غذاش چی بود که خداوند امام حسین به خدا عرض میکنه صبرن چگونه صبری نه خود امام حسین اطرافیان امام حسینم این صبر رو با چه رضایتی نشون دادن شما تاریخ خونده اید یا شنیده اید دیشب در کربلا چه کردن کی اشاره ای کردم همه این صحنه ها رو دیدن حالا امروز شد سپاه عمر سعد تو صحرای کربلا موندن اجساد اونهایی که تو جنگ با امام حسین از سپاه عمر صد کشته شده بودن اونا رو دفت کنن ابدان متحر شهدای کربلا رو سراشونه که از بدنشون جدا کردن به نیزه زدن جلوی چشم زن و بچه که در یک مقتلی دیدم در این بین راه که این سرار بالای نیزه زده بودن و میبردن توی خرابه‌ای نه خرابه شامو ازت روغیه، ظاهرا مورد دیگریه یه وقت سر ابی عبدالله علیه السلام بالای نیزه بود به دیوار این خرابه با بقیه سرها تکیه داده بودن. نگهبان سر میگه من شدیداً پای این نیزه نشسته بودم مواظب بودم خب قرار اینا رو مواظبت کنیم دیدم یه دختر بچه کم سن نسالی شاید جناب سکینه بوده نمیدونم هی hey, میادیه با شکی یه نگاهی به این سر میکنه منو نگاه میکنه میبینه من بیدارم فرار میکنه گفت من تصمیم گرفتم خودم رو به خواب بزنم گفت خودم رو به خواب زدم دیدم این بچه اومد این نیزه رو به زحمت خم کرد سر رو از نیزه کشید و شروع کرد با سر درد دل همه سحنه های تأثیر و شکنگه روحی رو برای این خانواده فراهم کرده بودند. سرار بریدن به نیزه زدن اسبار و نعل تازه دادن به ابدان متهر تازندن خیمه ها رو آتش زدن زن و بچه رو تو بیابونا تازندن ابدان اون خوبص رو دفت کردن حالا اینها رو توی این سرزمین خال... همجور گذاشتن زن و بچه رو هم بر مرکبها سوار کنند به عنوان اسیر امرو بعد ظهر از کربلا حرکت دادن به سوی کوفه یه صحنه اول موقع سواری زینب سلام الله ها اومدن به امام سجاد و یاری کردن سوار بشه بیماره این زن و بچه رو سوار کردن نوبت به سوار شدن خود زینب رسید یه نگاهی به گودال قتلگاند یه نگاهی به القمند آخر یه نگاهی به عبدان شهدایی که زیر سم اسبا خورد شده بودن انداخ روزی که وارد کربلا شدند، عباس زیر بغل زینب رو میگیره. علی اکبر زانو بالا میگرفت قاسم و اون و جعفر می اومدن. حالا ناموس ده یه محرم نداره کمکش کنه حالا به هر زحمتی سوار شدند، ولی برای این کنار بیازارن دستور دادن از کنار گودال قتلگاه عبور بدید وقتی به کنار گودال قتلگاه رسیدن مقتل داره مثل برگ پاییزی که از درختها فرو میریزه اینا همه از مرکبها دوباره به زمین افتادن رابی میگه به خدا یادم نمیره زینب رو دیدم اومده کنار گودال قتلگاه این شمشیر شکسته ها رو کنار زد این خنجر شکسته ها رو کنار زد سنگ ها رو کنار زد نگاهی به بدن بی عبدالله این اخی این ابن عمی تو برادر منی یه روز رو رو سینه پیغمبر دیدم امروز رو خاکها اون وقت رو کرد به مدینه جد دایا رسول الله حازا حسین المرملان به مقطع مغطع و لعظا و بنات یا جدد این حسین توز کشته شده قطع قطع شده به خون و این زن و بچه شماست که این گونه اسیر دست اینانن سکین و مجلو امه جان حازا نعش من این نعشکیه داری با اون اجوا می کنی حق داری برادر زاده بدن و یا به سر می یا به لباس بابا نه سر در بدن داره نه لباس به تن داره این بدن باباته سکینه میگه اومدم لبامو گذاشتم رو گلوی بریده بابام به خدا قسم از ملکوت شنیدم صدای ملکوتی بابامو شیعتی مامو شربتم از و ما انفکرونی او سمعتم بشهید او غریب فندبونی صلی الله علیک یا مولای یا اب يا بنا رسول الله، يا شیط بکربلا، يا سید ناب مولانا، ان لا تبجنا وسش بنو، و تبسان لا وقدمنا که بین ید ای حاجاتنم یا وجیه همین اللهم باسمك يا لظيم لا ازم العز بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله, يا الله, يا الله قل <تصفيق> و وكفنا يا غازي الحاجا ويا كافي المحمات انك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا دليل المتهيرين یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا اللام الغیوب و یا کاشف بالکروم نجات من که یا سیدی الکریم نجناب و خلصناب بحق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیبال مزتر ازاد آه و ییش بسون یا مجيب ا المزتر بکا نماز ترن فاجب لو فاجبنو و يا يا سلم المزتر بك مصدقیس فریسنا فریسنا الیا حميد حق محمد يا علي بحق علي يا فاطر ماد فاطميه يا محسن بن علي يا قدیم الحسان بن علي حسین و من زریة الحسین اللهم عجل بليك الفرج اللهم عجل بليك الفرج اللهم ارزقنا تومفیقط تا و بادل آسییه و و اان خرممه وکررمنابل خدا و ل نقامه و سبزی دل سننت نام تمام والکمه و و من الفجور و الخيال وسط دسمان و من اللقب و الغيبة، إلا يا رب الحسين، بقلب الحسين، اش به صدر الحسين، بزور الحجاج، يا رب الحجاج. لهم ذل حجاج اشف صدر الحسين وعجل اللهم الله في فرج مولانا صاحب